أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي ان النفس لامامه بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم من هرگز نفس خود را تبرع نمی کنم شک نفس اماری انسان پیوسته به بدی فرمان میدهد مگر آنچه پروردگارم رحم کند، بیگمان پروردگارم آمرزنده مهربان است. وقال الملک اتونی لنفسی فلما قال الملك اتوني به التحلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين پادشاه گفت او را نزد من بیاورید تا او را مخصوص خود گردانم پس چون یوسف نزد او آمد و با او صحبت کرد پادشاه گفت تو امروز نزد ما صاحب مقام والاب و امین هستی قال جعلنی علی خزائن الارض این حفيظ علی یوسف گفت مرا بر سرپرستی خزائن زمین قرار بده که من نگه دارند ای آگاهم وكذلك کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوع منها حیث یشاق نصیب برحمتنا من نشاء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 در حالی که آنها او را نشناختند و جهزهم بجهازهم قال اتونی بأخل لكم من أبیكم ألا ترون أنی اوفی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 پس اگر او را نزد من نیاورید نه این نزد من خواهید داشت و نه به من نزدیک شوید قالوا سنراود عنه اباه و انا گفتند ما درباره او با پدرش با اصرار گفتگو خواهیم کرد و مسلما این کار را میکنیم وقال في جَعَلُوا جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يوسف <تصفيق> بقلمان سرمایهشان را در بارهایشان بگذارید شاید هنگامی که به سوی خانواده خود بازگشتند آن را بشناسند شاید باز آیند. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پس چون به سوی پدرشان باز گشتند گفتند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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير و چون بار خود را سرمایهشان یافتند که به آنها بازگردانده شده است گفتند ای پدر ما ما دیگر چه می خواهیم این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است پس او را با ما بفرست و برای خانواده خود می میآوریم و برادرمان را حفظ میکنیم و یک بار شتر ابزون خواهیم آورد این پیمان برای عزیز مصر کار آسانی است قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننی به الا ان بكم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 من الله من شيء ان الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فهمچنین به آنها گفت ای پسران من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق داخل شوید، و من نمیتوانم چیزی از قضای خداوند از شما دفع کنم، حکم تنها از آن خداست، بر او توکل کرده هم و همه متوکلان بر او توکل کنند،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 وای ملت ع ممعلم الن ولك اکسسیله علم لما علمناه لا و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود داخل شدند این کار نمیتست چیزی از ضای خداوند را از آنان دف کند.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 پس هنگامی که بارهای آنها محیا کرد، جام را دربار برادرش گذاشت، سپس ندادهنده ای نداداد، ای کاروانیان، بدون شک شما دوست هستید، قالوا ماذا تفقدون؟ به طرف آنها رو کرده و گفتند، چه چیز گم کرده اید؟ نفقد الملك حمل بعیر جاء به حمل, بعیر جاء به حمل بعیر زعیم گفتند پیمانی پادشاه را گم کرده ایم و هر کس آن را بیاورد یک بار شتر جایزه دارد و من زامن این وعده هستم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنتم سارحين گفتند به خدا سوگند شما میدانید که ما نیامده ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دوز نبوده این قالوا فما جزاء این کنتم کذبین آنها گفتند پس اگر دروگو باشید کیفر از چیست؟ قالوا جزاؤه من مجد فی رحلهی فهو جزاؤه كذلك گفتند کیفر کسی که آن پیمان دربارش پیدا شود پس خودش کیفر آن خواهد بود که بردگی شما خواهد بود ما این گونه کاران را کیفر می دهیم فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ تِدْنَا لِيُوسُفَ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 پس شروع به جستجوی بارهای آنها پیش از بار برادرش پرداخت آنگاه آن را از بار برادرش بیرون آورد این گونه برای یوسف چار اندیشی کردیم او هرگز نمی‌توانست در آیین پادشاه برادرش را بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد درجات هر کسی را بخواهیم بالا میبریم. و از صاحب علمی داناتری است قالوا این يسرق فقد سرق اقل له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم يبدها لهم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 قال <سؤال> معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اینا ایزا لظالمون یوسف گفت پناه بر خدا که ما جز آن کسی که کالای من را نزد او یافته دیگری را بگیریم بیگمان در آن صورت ستمکار خواهیم بود فلم استیعتو منه خلقو نجیه قال کبیرهم علم تعلمو انجیه ما أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 یا خداوند درباره‌ی من داوری کند و او بهترین داوران است. یُرْجِعُون إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَثَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید ای پدرجان بیگمان پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه میدانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم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 قال بل ثولت لكم انفسكم امرا فصبرا جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم يعقوب قلت حقيقه تننيست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 عند خود را فرو می‌برد قالوا تالله تفاء تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين گفتند به خدا سوگند پیوسته یوسف را یاد می‌کنی تا آنکه سخت بیمار گردی یا بمیري ما اشكو و حضنی و من الله ما لا تعلمون. یعقوب گفت من شرح غم و پریشانی خود را تنها به خدا می گویم و به سوی او شکایت می برم و از سوی خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أي پسران من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 اینک کالای ناچیز و اندکی با خود آورده پس پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما صدقه و بخشش کن بیگمان خداوند بخشندگان را پاداش می دهد قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه از انتم جاهلون یوسف گفت آیا دانستید با یوسف چه کردید؟ هنگامی کنادان بودید؟ قالو اینک لأنت یوسف قال انا یوسف وهذا هذا قد من الله علینا اننه من یتق و یصبر الله لا یضيع اجر المحسنين برادران گفتند آیا به راستی تو همان یوسفی یوسف گفت آری من یوسفم و این برادر من است یقینا خداوند بر ما منت گذاشت همانا هرچز پرهیز، پرهیزگاری کند و صبر نماید بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را زایع نمی کند الله لقد آفرک الله علينا و این کن برادران گفتند به خدا سوگند یقینا خدا بند تو را بر ما برتری داده و حقا ما خطاکار بودیم قال لا تسریب عليكم اليوم یغفر الله لكم و ارحم یوسف گفت امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست خداوند شما را می و او مهربانترین مهربانان است ازهبو بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا و اجمعین این پیراهن مرا ببرید و بر چهره پدرم تا تابینا گردد و همه خانواده خود را نزد من بیاورید و فصلت العیر قال ابوهم اینی لأجد ریح یوسف لولا انت تفندون و چون کاروان از سرزمین مصر جدا شد و حرکت کرد پدرشان به اطرافیان گفت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 ما انجاء البشیر القاه على وجهه پس چون آمد و آن پیراهن را بر چهره او اکند ناگهان بینا شد گفت آیا به شما نگفتم که من از سوی خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید دانید قالو یا استغفر لنا ذنوبنا اینا کننا گفتند، ای پدر ما، برای ما باری گناهان من آمرزش بخواه، بیگمان ما کار بودیم. قال سوف استغفر لكم ربی، انه هو الغفور یعقوب گفت، بزودی برای شما از پروردگارم آمرزش میطلبم. بدون شک او آمرزنده مهربان است. فلما دخلوا على يوسف فآوا إليه أبويه وقال دخلو مصر إن شاء الله آمين پس چون بر یوسف وارد شدند او پدر و مادرش را در آغوش گرفت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 ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ای پیامبر این از خبرهای غیب است که به تو وحی میکنیم و هنگامی که برادران یوسف بد اندیشی می کردند و تصمیم گرفتند تو نزد آنها نبودی و بیشتر مردم و اگرچه بر ایمانشان حرس ورزی مؤمن نخواهند بود و ما تسألهم علیه من أجر إن هو الا ذكر للعالمین و تو بر این دعوت از آنها پاداشی نمی تلبی، آن برای جهان یا نیست وكاين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون چه بسا نشانهای در آسمانها و زمین وجود دارد که آنها از کنارش میگذرند و از آن روی میگردانند و ما یؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون و بیشتر آنها به خداوند ایمان نمی آورند. مگر اینکه آنان مشکند.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 قل هذه سبیلی ادعوا إلى الله على بصيرة أنا و من يتبعني الله وما أنا من المشركين. أيحيى بگو این راه من است.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 فَلَ ييسوا في الأرض فينظروا كيف كان الذين مِن فما پیش از تو نفرستادیم جز مردمی از اهل قريها که به آنها وه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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يقينا در داستانهایشان عبرتی براي خردمندان است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 اَلِفْ لَمِّمْ رَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابُ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يؤمنون.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 ثم اتوى على العرش وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 شاید شما به لقای پربردگارتان یقین حاصل کنید و الذي الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا كل كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ سْنَيْن الليل اللَّيْلَ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 گمان در این امور نشانه ها و عبرت برای گروهی که می انگیشند. و الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و ذرع و نخیل و غیر و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 و الذين كفروا لولا انذل عليه آیت من ربه اینما انتم انذر ولكل قوم هاد و که کافر شدند میگویند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 عالم الغیب او دانای غیب و الشهادت المتعال المتعال اودانای غیب آشکار بزرگ و بلند مرتبه است سواء منکن من اسر القول و من جهر به و هو مستخف من هو مستخف باللیل و تاربون برای خداوند یکسان است که کسی از شما پنهانی سخن بگوید و کسی آن را آشکار سازد و کسی که در تاریکی شب پنهان شود یا در روشنائی روز آشکارا راه می له معقبات من بین یدیه و خلفه يحفظونه من امر الله این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم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 هو يريكم البرق خوفا و و السحاب او الذي یوری کو بقا خام فون و با نعم او کسی است که برق را برای ترساندن و امیدوار شدن به شما مین مات و ابرهای سنگین بار را پدید میآورد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويُرسل الصَّوَاعِقَ ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال و برای به ستایش او و فرشتگان از ترس او تسبیح میگویند و سائقه ها را میفرستد پس هر کس که بخواهد بدان آسیب میرساند و آنها در خدا مجادله میکنند و او بسیار نیرومند است له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لَهُم بشيء إلا إلا كباتق كف إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال دعوت حق از آن اوست و کسانی را که مشرکان به جای او می هرگز دعوتشان را اجابت نمی کنند مگر مانند کسی که کف دستش را به سوی آب می تا آب به دهانش برسد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 از روی اطاعت یا اکراه و همچنین سایه هایشان و شامگاهان برای خدا سجده می کنند قل مر رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلق كَ خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ای پیامبر، به مشکان بگو، پروردگار آسمانها و زمین کیست بگو الله.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 پس این آفرینش ها بر آنها مشبه شده است بگو الله آفریننده همه چیز است و او یگانه چیره است انزل من السماء ما ان فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السيل زبد ومما يُوقِدُونَ عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءه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 اینگونه خداوند مثال میزند لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهُ اولائی که لهم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 فَمَن يَعْلَم أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى انما يَتَذَكَّرُ أُولُو آیا کسی که میداند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است مانند کسی است که او نابینا است تنها خیردمندان پادمی گیرند الّذین یوفون بعهد الله ولا یخنقون المیثاق همان کسانی که به پیمان خدا وفا می کنند و عهد و پیمان را نمی شکنند والذین یصلون ما امر الله به ویخشون ربهم, و ربهم و و کسانی که آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمانداد پیوند میدهند و از پروردگارشان میترسند و از سختی حساب بیم دارند والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا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 و الملائکتو یدخلون من کلی همان باق های جاویدان بهشتی که وارد آن میشوند و همچنین هرکس از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که نیکوکار بوده اند و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد میشوند. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار و به آنها می گویند سلام بر شما به خاطر آنچه صبر نمودی اید. پس چه خوب است عاقبت آن سرای جاویدان و الذین یونقبون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سون و کسانی که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را که خداوند به پیوستن آن فرمانداد قط می کنند و در زمین فساد می نمایند لعنت برای آنهاست و برای آنها سختی و بدی آن سرای آخرت است الله يبسق الرزق لمن یشاء و یقدر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 جزمتها اینا چیز نیست ویقول الَّذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه قل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إليه و کسانی که کافر شدند میگویند چرا نشانه و معجزه از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است ای پیامبر بگو بیگمان خداوند هر کس را بخواهد خواهد گمراه میکند و هر کس که باز گردد و توبه کند به سوی خیش هدایت میکند. کند الَّذین آمَنُوا وَتَطْمَعِنُوا قُلُوبُهُمْ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وكفاني که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برایشان خوشی است و بازگشتگاه نیکو دارند كذلك ارسلناک في امه قد خلت من قبلها أمم لتتلو مِنْ عليهم الذي أوحينا إليك، لتثل عليهم الذي أوحينا إليك، وهم ي.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 اَللَّوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَنَا سَجَمِيعًا وَلَا يَذَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ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 تا وعدی خدا فرار سد، بیگمان خدا خداوند خلاف وعده نمی کند و لقد استهزئ برسل من قبلک فاملیت للذین كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب و به راستی به پیام برانی پیش از تو نیز تمسخر و استهزا کرده شد پس من به کسانی که کفر برزیدند محلت دادم آنگاه آنها را فرو گرفتم پس بنگر مجازات من چگونه بود؟ افمن قائم علی کل نفس بما کسبت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 اکلها دائم و ظلها تلک عقبال لذین اتقو عقبال وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است چنین است که نهرها از زیر درختان آنجاری است نیوه هایش همیشگی و نیز سایه اش دائمی است این از سرانجام کسانی که پرهیز داری کردند و سرانجام کافران آتش جهنم است و الذین الكتاب يفرحون بما انزل إليك و من الأحزاب من ينکر بعضا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعوا واليه ما انت كساني چه به آنها کتاب دادیم از آن چه بر تو نازل شده خوشحال میشوند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 و این گونه این قرآن را به عنوان حکم و فرمانی به زبان عربی نازل کردیم و اگر بعد از آگاهی برای تو آمده از حوضهای آنها پیروی کنی در برابر عذاب خداوند هیچ کار ساز و نگه ای نخواهی داشت ولقد ارسلنا رسلا من قُمْنَ لِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ إِلَّا و برای آنها همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ پیام بری حق نداشت که جز به فرمان خدا معجزه بیاورد و برای هر امر و زمانی نوشته ای مقرر است الله ما یشاء و یثبت و خداوند هرچه را که بخواهد محف و هرچه بخواهد اثبات می کند و اون ملکتاب نزده اوست و اما بعض الذي نعدهم او نتوفینک فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 لا معقب الحساب آیا ندیدند که ما پیوسته به سراغ این سرزمین کفر می آییم که آن را از اطراف و دامنهایش می کاهیم و خداوند حکم می کند و هیچ کس نمی تواند حکم او را رد کند و او سریع الحساب است وقد مكر الذين من قبلهم فللله المثل جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار فبراستي كساني که پیش از آنها بودند مکر ورزیدند و نقشه کشیدند پس تمام مکرها از آن خداست میداند آنچه را که هرکس انجام میدهد، و به زودی کافران خواهند دانست که سرانجام سرای آخرت از آنی کیست و یقول الذین کفرون است قل کفا بالله شهیدا بینی و ومن عنده علم الكتاب و کتانی که کافر شدند میگویند تو پیام بر خدا نیستی بگو است که خدا و کسی که علم نزد اوست میان من و شما گواه باشد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 کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. لام را این کتابی است که بر تو ای پیام برنازل کردیم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 اولئک فی ضلال همانا کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و کجی و انحراف آن راه را می‌خواهند اینان در گمراهی دوری هستند و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه یبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحكيم. ما هیچ پیام بری مگر به زبان قومش نفرستادیم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 فأيام الله را به یادشان آور بیگمان در این امر برای هر صبر کننده شکر گزاری نشانه است و ان قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من ال فرعون یتومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءكم و نساءكم و ذلكم بلاء من ربكم عظیم و پیامبر به یادا که موسا به گفت نعمت خدا را بر خود به یاد آورید چون شما را از چنگال فرعونیان نجات داد که به بدترین عذابها شما را عذاب می کردند، پسرانتان را سر می و زنانتان را زنده می و در این امر از جانب پروردگارتان برای شما آزمایش بزرگ بود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 و اگر کفران کنید بیگمان عذاب من سخت است و قال موسا این تکفرو انتم و من في الارض جميعا فإن الله لغنی الحمید و موسا به آنها گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید پس به خداوند هیچ زیانی نمیرسد. بیگمان خداوند بینیاز و ستوده است. الم یهتیکم نبع الذین من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاد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 قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تقضوا علينا كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين گفتند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 پس معجزه و دلیل آشکاری برای ما بیاورید <تصفح> قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من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 و ما لنا ان نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا و لنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون و ما را است که بر خدا توکل نکنیم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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين و کسانی که كافر شدند به يامبرانشان گفتند ما قطعا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، یا اینکه به آین ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنها وی فرستاد که یقیناً ستمگران را نابود خواهیم کرد. و لنسکننکم الارض من بعدهم، ذلک لمن خاف مقامی و وعید،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 من ورائه جهنم و یسقا من مائن صدید پشت سرش جهنم است و از آب چرک و خون نوشانده شود یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه المون و یهتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیب. که جرع جرع آن می نوشد و نمیتواند آن را به آسانی فرو برد و مرگ از هر سو به سراغ او می آید در حالی که او نخواهد مرد وعذاب عذاب سختی در پیش رو دارد مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرمادی نشتزدت به الریح في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شیمی ذلك هو الضلال البعید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 و خلق جدیدی می آورد و ما ذالک بعزیز به این کار بر خداوند دشوار نیست و برزول الله جمیعا فقال الله للذین فَقَالَ الْضَعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنْ نَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن و در روز قیامت همگی در پیشگاه خداوند حاضر و آشکار شوند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 هیچ گریزگاهی برای ما نیست. وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني والوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخ يا ان کفرت و چون داوری و کار تمام شود شیطان گوید بیگمان گمان خداوند به شما بعدی حق براستین داد و من به شما وعده دادم آنگاه خلاف وعده کردم من بر شما هیچ تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید پس مرا سرزنش نکنید و بلکه خیش را سرزنش کنید نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریادرس من همانا من از اینکه مرا پیش از این شریک خدا ساختید بیزارم بیگمان برای ستمکاران عذاب درد ناکیست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 قالبین فیها و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باقهای بهشتی درآورده میشوند می شوند که نرها از ویر درختان آنجاری است به فرمان پروردگارشان جاودانه در آن میمانند، تحیته آنها در ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء آیا ندیدی که خداوند چگونه گونه مثل زده است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 و یضرب الله الانفال لناس لعلهم یتذکرون هر زمان و فصلی میبه خود را به فرمان پروردگارش میدهد و خداوند برای هدایت مردم مثلها میزند باشد که متذکر شوند. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت نجتستت من فوق الارض و جتستت فوق آب ما لها من قرار و مثل کلمه خبیثه همچون درخت پلید و ناپاکیست که از زمین برکنده شده و هیچ قرار و صباتی ندارد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضلل الله الظالمين، ويضلل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. خداوند کسانی را که ایمان آوردند با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت پایدار می‌دارد و ستمکاران را گمراه می‌سازد و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. دهد علم تر ایلالذین بدلو نعمت الله کفر و احلو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 قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را بر پادارند و از آنچه به آنها روزی داده این پنهان و آشکار انفاق کنند. پیش از آنکه روزی فرار رسد که در آن نخرید و فروش است و دوستی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 و کشتی ها را برای شما مسخر گرداند تا به فرمان او در دریا روان باشد و نرحانیس برای شما مسخر گرداند و تغفر لکم الشمس و القمر دائبین و تغفر لکم اللیل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 ستمگری ناسپاس است و اید قال ابراهیم ربی اجعل هذا البلد و جنبنی و بنی ان نحبود الاصنام و به یاد آورید چون ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را مکان امن قرار بده و مرا و فرزندانم را از آنکه بدها را پرستش کنیم دور بدار رب إنهن أظللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحیم پروردگارا بیگمان آنها بسیاری از مردم را گمراه ساختند پس کسی که از من پیروی کند بدون شک او از من است و کسی که از من نافرمانی کند بیگمان تو آمرزنده مهربانی ربنا اینی از کنتمی نورينتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم و من الثمرات لعلهم پروردگارا من برخی از فرزندانم را در وادی خوش و بی آب و بی نزد خانی گرامی تو ساکن ساختم پروردگارا تا نماز را برپا پس تو دلهای گروهی از مردم را به آنها مایل بگردان. و از میوه ها به آنها روزیده باشد که آنان سپاس گذارند قم بنا تعلم ما نخفي وما نعلي وما يخفى على الله من شيء فی الأرض ولا فی السماء تو میدانی آنچرا که ما پنهان می کنیم و آنچرا که آشکار می سازیم و چیزی نه در زمین و نه در آسمان بر خداوند پوشیده نمی ماند الحمد لله الذي وهب لي على الكبر و وابصارا ان ربی لسمیع الدعاء ستایش از آن خداوند است که در سن پیری اسماعیل و اسحاق به من عطا فرمود مسلما پروردگار من و دعاست رب جعلنی مقیما الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. پروردگارا مرا بر پادارنده نماز قرار بده و از فرزندانم چنین فرما پروردگارا و دعای مرا بپذیر. رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم پروردگارا مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را در روزی که حساب برپا می شود بیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ و گمان مبرک خدا از آنچه ستم کاران می غافل است. نه بلکه کیفره آنها را برای روزی که چشمها دران خیره میشوند به تأخیر می افکند مهطعین مقنعین رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم و هوا شتابان سرها رو به بالا گرفته و چشم برهم نمی زنند و دلهایشان فروریخته ریخته و خالیست و انذرین ناس یوم یأسیهم العذاب فیقول الذین ظلموا, ظلموا ربنا اخیرنا ب بِن مردم را از روزی که عذاب به سراغشان می‌آید بترسان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 انتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الانفال ودر مسكن کسانی که بخیشتن ستم کرده اند ساکن شدید و برای شما روشن شد که با آنها چگونه رفتار کردیم و برای شما مثلها زدیم وقد قدمکروا مکرهم وعند الله مکرهم وعند الله مکرهم وان كان مکرهم لتزول منه الجبال و به راستی آنها نهایت مکر خود را به کار بردند و همه مکرشان نزد خدا آشکار است و هرچند که با مکرشان کوهها از جا کند شود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله این الله عزیز زنتقاب پس گمان مبرک خداوند بعد را که به پیام برانش نشداد خلف وعده کند بی گمان خداوند پیروزمند انتقام گیر است یومت بدل الارض غیر الارض والسماوات و برزول الله الواحد القهار روزی که این زمین به زمین دیگر و آسمانها به گونه ای دیگر مبدل می شود و آنها همگی به پیشگاه خداوند یکتای قهار ظاهر و آشکار می شود. و المجرمین و در آن روز مجرمان را دست و پا به هم بسته در قلها می بینی سرابیلهم من قطران سراب من قطران وترشا وجوههم نام جامهایشان از قطران است و چهرههایشان را آتش جهنم میپوشاند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 هذا للناس به وليعلموا هو واحد این قرآن پیامی برای مردم است و تا بدان یابند، و تا بدانند که او معبودی یکتاست، و تا خردمندان پند گیرند،